マシャンエツギルー しかし、私たちはそれを考えていると言っていました。 هر در که زدیمی دفت بد آمد به جوابت پت منتظر پاسخ جانانه ما هر در که زدیمی دفت بد آمد به جوابت まだありあ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 どうでしょう خدایم را اگه دعوت نمی کردی کسی می اومد در خودت مگه خدایی تو می دارد از خالی برگردی اما روز عراقه که دعوت خواست کردی در مدیده منور وجود مغدت ما و سجاد علیه سلام روز عرفه دیگه گناهی همزی گرام زرخات میکنن امام علیه السلام برمودم جلس تعجب میکنن در روز عرفه از غیر خدا چیزی تلاب میکنن 「あまりに出るような顔をしてしか در حالات هستا فرعون نرمی کنن وقتی بانای کاخ بشت بمول جمینتم در سرش دیدم یه جعب روی آب روی روده نیداره می آن و هر چیزه پره در این رو خونه این جعبه رو برام بیاره من یه سره یه سنگینی بشمیدم چمصد نفر خودشون رو با امید سنه فران به آق دادن یکی از این آجابر رو گرفت آمد و این یه دور شدن فران بغ نبگید بیان به همه سره میدم چون با امید سنه خودشون رو به آق داختن ما امیدشون رو نامید نمی کنیم コダイマーの手を握ることができない。<音声> صفاتی رو که امام حسین از خدا بر ما یاد دادن و این صفات خدا را خودیم حالا با توجه به خدا دخویم اما متأذی زمان حواس من, من جاموشه در این فرصت ارزنده در این وقت رستمیار گرمه و این حال من آنجا تونستم و این تعبیر 私たちはこのように、私たちはこのように、私たちはこのように、私たちはこのように、私たちはこのように、私はこのように、私たちはこのように、私たはこのように、私たちはこのように、私たはこのように、私たちは マンボンアイデアルタンジャーズの足がきつまりとギャリーナボンズションに行くの間にラテンウサーの間にバイヤーマンジャーモンスターの子供たちが大好きなのにバンデーマンシャルマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデーマンデ موسا این یک جوانی از دنیا رفته پاچو به زنجیر رفتن به دونه اصفات کوچه ها می کنن پرسید چه می کنید جواب دادن این جوان گنه کار بود هجیمان شد خمو بکر و اون حال خود از دنیا رفت و سید کل برای عبرت و دیگه منو به دنیا 「私の手を取ってくれ」<音楽>「私の手し取ってくれ」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 دیگر زمینیم بیرون می‌ریم تا جایی بریم که جامعه می‌رسیم تا زمان مطالعه داره تو برود، اون بناخوانی که خودش بناخواه می‌کند، انشکال. عشقش جاری شد سرش رو پایی ندا تو زیر خوب خدا آمه روی من رو در بیدار ایتیم بابد یه من بارات شروع کرد به پایی در پرسیدم یا موسا چنین گفت رویی وحی آمد بسته واسلش میکرد عشقش جاری شد ما نمی خایی ما به روش رو ببرید خدا خدا م تو را امام و جگر دم خدا خدا مشتاق مجانیت در کره زمین قوم قامی خود خدا مثل منام زیل چنگار است دنبال یه صبح می‌نمیام یا آنلا خدا م تو را خدا این دستم خدا, خدا من آیت خاطر دادم خدا مخلص، باشید دگان باد دگان تمشک است، دریل اسرار فکر سخن خدا. درایت های مرشیدان حمله بد مخیا، انگرس پرچم آمده زمان امضاء پرنا.